جلسه یه و چهاران محمدو من ها یعنی بعضیه یعنی یکی دیگه از مبییات بعض از مبییات البعصور است. وحبه حرفی حرفیون او اسمی یکی موصول دو بسکر یکی موصول حرفی و دیگری موصول اسم چون این دوتا فقط در اسم شبیه هم بودن لذا چه کرد؟ اول تقسیم کرد بعد تعریف هم کدوم یعنی اینها با هم مشترکاتی به جز اینکه اسم هم دو موصول نیست یکی موصول حرفی و دیگری موصول اسمی فقط در اسم هم. مثل که به ما بگن شیر رو بگو بگیم شیر بر سر اسم است. شیر آب شیر خوردنی شیر درنده چون اینا با هم هیچه ارتباطی نداره اول باید تقسیم کنیم بعد تعریف هر کدوم رو بیاریم اینطور نیستش که اول بتونیم یک کلیش رو تعریف کنیم مثل کلمه بعد بیایم بگیم این کلمه بر سه قسمه اسم و فعل و اینطور نیست یعنی اسم و فعل و حرف که سه رسمند تحت یک لفظ بالاتر و یک معنای بالاتر که کلمه هست جمع میشن اما این الفاظ موصول اسمی و حرفی داریم پس موصول اسمی و حرفی فقط در اسم با هم یکی هستن بلا در کار و در واقعیات بیرون هیچ کونه ارتباطی با هم ندارم بینشون تبایونه اینو تو سینتون داشته باش. یکیش حرفه یکیش چیه؟ اسمه یکیش تحویل به مستر میبره یکیش تحویل نمیبره یکیش احتیاج به آید نداره اون موصول حرفی که نمیتونه به حرف چیزی برگرده یکیش نیازه به آید داره به قد میفرمایید یا نه؟ اینها اصلا ارتباط با هم ندارن لسه اول از حرفی شروع میکنه پس ذکر موصول حرفی در بین بحث موصول و مبنیات موصول حرفی رو که ذکر میکنن تردن لبابه یعنی منجهت الاستتراد از جهته با قول معروف این که مبحث تمام کنن و اسمی از موصول واقعی نمونه ذکر میکنن ولی موصول حرفی جاش اینجا نیست تو حرف مستری روز میشه فل حرفی موصول حرفی کل حرفه هر است که اولمه اصلتیهی تعویل برده میشه به همراه سله خودش به به یک مستن هر حرفی که به همراه سله خودش سله یعنی که متصله به اوست یعنی فعل برده خودش هر حرفی که تعویل برده میشه با سله خودش یعنی با فعل بعد از خودش ها؟ محضرتی به مستر به مستر اینو بهش میگن چی؟ موضوع پس موضوع حرفی عبارت شده از حرف مستری یعنی حرفی که ما بعد خودش رو تعویل به مستر بیاره یعنی جمله ما بعد خودش حالا هم از اسمیه یا فعلیه تعویل به مستر ول مشهوره خمستون اونی که مشهور است و مقبول 5 پنجتاست حالا انشاءالله میرسید که بعضی علزی رو به غلط رو که جزو محصولات چیه اسمیست و محصول مختصم هست جزعه محصولات حرفی حساب کرده و این غلطی لذا ایشون میگه مشهور خمسه هست اونی که مشهوره پنجتاست و مقبول هم همین است و غیر از این نیست والمشهورا مشهورا خمسه ان یک انه دو ما سه که چهار لو پنج سلام ده انش کی می کی که میدانی وروف مشبهتون بلفله که گفتیم که کار میکنه وروف مشبهتون ما بعد خودشو تاویره به مصدر میبره یادتونه گفتیم اگر این حل محلهو حل لهو این ان نه ان رو هم خوانده این ان ان ناسبه فعله مزاره که با بعد خودش رو تعبیل به مستر میبره اگر بر سر مزاره در بیاد لصب میده و تعبیل به مستر هم میبره ان یزره ولی اگر بر سر موزی یا ان در بیاد تحویل به مستر میبره اما دیگه نصب بگیر بگید کار نیست چرا چون این دو فیلم اپنی هم این هم دیگه امنه ما باز این ما تحویل به مستر میبره ما بعد خودشو و از این قسم ما ما یک شا خوندیم کجا خوندیم این ما یک تحویل به مستر میره ما دامن ما شمایه چیه مستریگه ها مستریگه زمانیه که گفتیم چی؟ ما قبلش میشه مدت دوام تحویل به مستر میره و قبلش هم یه زمان در تقدیره لذا بهش گفتیم مستریگه زرفیگه یا زمانیه. و کای این رو هم باز خوندیم که گفتیم کای بر دو قسمه یکی کای حرف جر که معنای نامه و یکی هم کعیه ناسبه بر سر فعل زاده در میاد مابدش دویره به مستر میبره و همیشه چیه این کهی ناسبه مجروره به لامه مهند درگاهشون نیست یک کهی نیست حالا گاهی اوقات کهیش ظاهر میشه گاهی ظاهر نیست در, در, در, در, در, در. سلام و بعدی لو این لو لوی شرطیگه نیست این لو داریم لوی است. هست ولو شنا لرفعنا ها بها به اگه ما میخواستین او رو بلندش میکردیم بلند مرتبه میکردیم بله همه با او رو با این آیاد ولی نکردیم ولو شهنا. این لو لوی مستریگه هست یعنی ما بعد خودش رو تحویل به مستر میرد بگیم به اگر بگیم حالا مثال بزنم بگیم چشم پنج آیه براتون نسانست اولا یک فهم انا انزلنا هون کفایکی یک مفعولی به معنای اقنا یهون اجزعه با همزه یجزی یعنی بینیاز کرد اول همزه همزه استقامه حتی بروابع عطف مقدم میشه چون صدارت تامونه داره یه اگه بود میگفتیم وحل همزه که میاد میگیم اول همزه تو بر واف مقدم میشه واف واف تو همزه همزه استفاد لم یکفه به جزمی نامور شفت افتاده بیگه یکفی بود هم مفعول لم یکفه انا انزلناهو تعویل به مستر میره میشه چی؟ انزالنا ياهوه مصدر اضافه میشه به فائلش اون یاهو هم زمیره مفعولی مدرسونه اون مصدره همون هو انزالنا فاعل لم یک فعلش این مصدر مفعول معلن معروف فاعل نا اسم است انزلناه هو فعل و فاعل مفعول خبر است این شواهد سر کدوم بود انه. این مثال مال انه مثال دوبار انتسومو یعنی نسب بده انتسومو خیرون لکن الان انتسومو در بیر مسته میره میشه چی؟ سومو یا سیامو کن سومو سیام هر دو مسته سومو خیرون لکم سومکم مبتدا خیرون لکم خبرش لکم متعلق رو خیر پس انتسوموم اینجا تحبیر و مستر بره در محل رفع بازم اما بنابر ابتدایی این دوتا برای خاطر اینکه موضوعات حرفی خوب بتونید حفظ کنید آیاتش رو باید حفظ کنید و در ذهنش به ما نسو یومل حساب به ما نسو یومل حساب اون باش پای سببیت به ما نسو نسو فعل نسیا نسیا نسیه نسو یومل حساب مفعول نسوست فراموش کردم روز حساب کرا روز محاسبه را روز قیامت خب این ما ما بعد خودش تعویل به مستر میبره میشه چی؟ به هم نسیان مستر نسیر به نسیان هم اون هم همون هم واقع نسیر که گفت چه چجوری تعویل به مستر میبرن اضافه میکنن به فائل آه بعد اگه مفهولی بشه شه مفهولی شد به نسیانه هم یا اومن حساب یا اومن حساب هم که مفهول همونطور ذکر میشه پس این با ما بعد خود رو تحویل به مستر به نسیانه هم یا حساب یعنی ما اونها رو عذاب کردیم دنبال آیر پیدا کنیم به خاطر این که اونها روز جزا رو چه کرده بودن براموچ کرده بودن لذا اعمالشون اعمال به درد بخورد نشد ما اونها رو به کیفت بسونیم به ما نست یا اومن هست لکایلا یکون علل مؤمنینه هر اجون هر از یعنی سختی یعنی ما اسلام رو فرستادیم قوانین الهی رو ایجاد کردیم لِكَيْ لَا ببینید. این آیه رو مثال زد که لام قبل از که صد درصد ثابت کنه که چی؟ که این حرف حرف است که ما رو تحبیل به مستر میبره تا اینکه مجبور مجرور بشه به لام چون میدونین حرف جر یا باید بر سر اسم سریح در بیاد مثل بزیده یا بر سر اسم معول اسم معول یعنی چی؟ یعنی اسمی که تعویل برده شده تا شده اسم سلام دید لذا مثل به ما اینجا هم لکی لا. یعنی برای این که لا یکونه علم مومنی نه نباشد بر مؤمنین سختی بید برای که سختی بر مؤمنین نشد دو دوچار مشکل نشد ما این کار رو لکای لا متعلق به فعل قبل از خودشه یعنی تعبیل به مستر میره میشه جار و مجرور متعلق به فعل ما لایکونه لایکونو چی لایکونه؟ چون که این نسب بود لا يکونه. فعل ناقص علال متعلق به عامل مقدر خبر مقدم هر اسم معاخره لای لکای کونه هلال مومنینه میشه چی؟ به مستر بره لعدمه هر کجایی که فعل منفی باشه موقع تعویل به مستر بردن چی میکنن؟ یه عدم بر سر اون مستر محبول در میارن تا اینکه اون منفی بودنش مثلا ان تسومو شد چی؟ سومو کم ان لا تسومو میشه چی؟ آدم و سومو درست حالا اگر میگفت لکایکون علال مومنین حرج میشه لکون حرجن علال مومنین کون اضافه میشه به مستر اضافه میشه به اسم بادش چون اینچه نیست باید کن حالا چون لکای میشه چی عدم آیه بعد ببینی عیاد تو آحاد کم لو یا و لو یا الفساناتی به یهودی ها میگه میگه ای و آیا ود تو عهدو آیا داره یکی از شما یا دو تو امزام دستفام یا دو تو فرموزه عهدو کم پای بر یا ود لو یو امر یو امر فرموشو زمیر نای فایلشی که برمیگرده به احد الفسنطن ظرفشه یعنی عمر داده شود هزار سال در هزار سال زندگی میشه میگه آیا شما احدی از شما هستش که دوست داشته باشه هزار سال عمر رو داده بشه این اینطوری هستید که سانی هستید که شسبیدید به این زمین حاضر نیستید که اتبا هزار ازار سلام بکنید از این دنیا بید لو یو امم خب تعویل به مستر بیرمی شه چی؟ تعمی رهو تعمی رهو الف سنتم تعمی رهو الف سنتم تأمیره الف سنتم تأمیره از یعمر گرفته شد دیگه شد مسترش چی؟ تأمیر بعد اون زمیر داخل یعمر اومد بیرون شد مزاخره لی تأمیره الف سنتم این عبادت ها ایگه اشکال داره خب بعدو تعمیر رهو میشه چی مفعول یا مفعول چی چی یا بعد این همین آیه باز در قرآن زیاده مثلا آیه ربما ما یا لزین ما لزین لوکان و مسلمین لوکان و مسلمین ربما که میدونید دیگه چیه حرف جر مکفوف به وسیله ماست ما گفته اول چیه یعبد دو فعل الذین افائلش کفروا رسل لوکان و لو مسلمین تحویل به مستر میره میشه چی؟ کونه هم مسلمین بعدی کونه هم مسلمین میشه چی؟ مفعول ی دو معنای آیه میشه چی؟ میگه کم اتفاق میفته کم اتفاق رو با ما تقلید دیگه کم اتفاق میافته که سالی که کافر شدن در روز قیامت بگن که ای کاش ما مسلمون بودن. بودنشون مسلمونی رو دوستشوشن و دود این دوستی بودیم تمدیم کنن آرزو کنن که کاش ما... حالا منظور چیه؟ ببینید نه که کم اتفاق میفته نمیخوان مسلمون باشن یعنی اینقدر سرشون مشغوله و عذاب و به قول معروف گرفتاریه که فکر آرزو کردن بگیر یه لحظه که افاقه پیدا میکنن یه لحظه که همچین به خود میان چه میکنن برمیگردن میگن چی میگن لوکانو ای کاش ما آدم هایی بودیم که مسلمان بودیم لعقل از این سختی و بلا چیه درست بعد آیات دیگر هم ود لوتوت هنو فیاد هنون و همسال این ها که این نکتر رو ثابت میخوام بکنم که اونی که لویه مستریه هست بعد از ماده وده ی وده, وده. این دوست داشتن حالا یکی توبو میخوندم همینطور توب بود وده و لوتود هنوف و یاد هنون همینطوره بعد از ماده وده هشتاد درصد میاد هشتاد درصد 15% بعد از ماده مرادف یعنی دوست داشتن کلمات که مرادف اونن نه 5% که کمتر حتی ممکنه که با جملات که پس در مورد دو ما این مطلب رو فدمتون ارز کرد خب این مال منصول چی چی؟ هر بحثش تمام شد سر اسم رو یعنی کامل کردن رو قتمی به بخص محصول ول محصول اسمی ما میگه ول محصول اسمی مفتقره الاسرطنی ما رو بی خود کنش داخل چی چی؟ اسمی ما افتقره چیزی است که محتاج است افتقره یعنی احتاجه چیزیه که محتاج است الاسلت احتیاج داره به یک سله تا اینجا شامل محصول حرفی هم بگید میشه اما میگه و آیدن و یک آیدن به محصول. هم سله میخواد هم آید این دیگه محصول حرفی رو چه میکنه؟ آید. محصول حرفی نیازه به آید بگید زمیری رو که به بر برمیگرده بهش میگن چی؟ آئد اما زمیری که از خبر به محتدا برمیگرده از صفت به بر برمیگرده از حال به زلحال برمیگرده این نظام آئده بش میگن رابع فرقیت آئد فقط مال محصول و آئده حالا کدومه موصولات اسمی؟ میگه معصولات اسمی همونطور که چند بار به خوندی خوندیم اینو بر دو قسمان یکی موسولات مخصه که یک لفظ مانی یک معناست و یکم موسولات مشترکه که یک لفظ است به جای شیشتا معنا مثل من که هم به معنای اللذی هم به معنای اللذانه هم به معنای اللذینه علتی علتانه علایی چیه یک لفظ است به جای. میگه وقوبه اللذی اول از مختصات شروع می‌کنه وقوبه اللذین مذکر هستند اللذی برای و شما که این کلمات معنی هستن به دلیل اینکه شباهت چیزی دارن افتقاری دارن به چی صحت یعنی نیاز به جمله دارن ذاتاً لذا از اون کلمه مفتقر شما بعد اینو الهام تقارب سله دارن زاپن نزا اون،, اون دیگه دارده به این مطلب و اول لذیل مزاکر و علتیل ال... مهن نس و علزانه تثنیه علتانه چی؟ تثنیه یکیش تثنیه علزی کرده حالا اینا در آلت رفعی علزانه و علتانه در آلت نسیبی جلی چی؟ علزینه و اللتين قام و گفتیم چون تصنیه معارضه میکنه با علت بنا این دو لفظ چیان موره بند مبنی نیست اعراب نه مصناه برای تصنیه یه و اللتان ب لا امکان مرفوع ای محل عله و عله میگه با علف نیا امکانا اگر باشن این دوتا محفو علمه یعنی محلا تو گفتیم این نظر شیخه توی بحث زانه و زینه یادتونه تانه و تینه تو میشون میگه که چی؟ معارضه صورت نگرفته این عله زانه و تینه باز هم چیه هم؟ فقط نهایتا بگیر در حالت غفی مدنی به علف و علف در حالت نسبی مدن و جلی مقنی به یا و نون ای صورت نگه گفتم که این قول بر خلاف قول مشهور و قول مقبول به این آن. در اللزانه و علتانه میشون همین مطلب رو میگه و این قول قوله بسیار زهیم قول حقی است که اللزانه و علتانه مورب هستند در حالت رفعی به الف و نون در حالت نسلی و جلی به یا و نون و علت اعرابشون هم اینه که تصمیه از خواص اسمه با چی؟ با علت بنا چکای کرده؟ محارزه و این کلمه برگشته به اصل خودش و شده مورد علم المحل و بلیا امکانا منصوبه ایه و مجروره و با یا گفته میشه اگر اینها چی باشن؟ منصوب و باشن یا مجبور و اولا، و الذين مطلقا الاولا و الذين این دو تا کلمه مطلقا مطلقا یعنی در حالت رفعی نسبی جری چرا چون اینا دو تا چون هم چین مبنین ار دو مبنی هم مبنی نگی چرا جمع مارزونه که بگیون آخر جمع بسته نشده اینکه یعنی جمع حقیقی بکیر بسته نشده که معارضه کنه ولی تصنیه تسنیه حقیقی بود با الف و نون یاو می گفتن الضیرا مطلقا و الضیرا یعنی چی چرا میچه نسیچه جدی اینا مبنی هستن برای هر سه تا لجمع المذكره برای جمع مذکر و الائی و الاتی و الواتی این سه تا لجمع المهندسی برای جمع چی هم؟ مهندسی لجمع هم من و جمع حقیقی یا جمع حقیقی علتی بگیر نیستن بزا معارضه هم صورت اون شباعت هست و این ها حالا سر محصولات چی؟, چی؟ مشترک اولیش من که گفتیم این من برای چی به کار میره زبل اغور یعنی تو نسیه نیست به معنی الازی برای زبل اغور الازی الازانه مثلا رعای تو من زربکه رعای من زربکه یعنی چی؟ دیدم کسی رو که تو رو حالا میتونیم بگیم ربا کرد میتونیم بگیم ضربو کرد میتونیم بگیم ضربت کرد ضربتا کرد ضرب نکر و این تصریف از ضربه تا ضربنه دلالت برای این میکنه که من به معنای چیه؟ کشتا لفته چرا چون یه بار ضمیره الان در ضربکه ضمیر هوبه بش برمیگرده در ضرباکه ضمیر علف بش برمیگرده ضربوکه ضمیر واق بش برمیگرده ضربتکه ضمیر این یه مصبته که علف مهنده آها علف دستیه مهنده و زرب نکه نون جمع مهنده است و این نشون دهنده اینه که من به هر شیش معناتیه این مال محصول من ما ما گفتیم که نوت درصد برای چی به کار میره غیر زبل عبور اما دیده شده برای زبل اغور هم به کار رد مثل ونی که هو ما تابلکم کن سا ونی که هو ما تابلکم یعنی اللایی تپ نرکن اون خانم هایی که تیبن برای شما ازدوار برای منان بیان ما یا وستماع و ما بنا. ما برای زبد به کار رفته ده بیس درصد ده درصد اونزد درصد اما بردیش برای غیر ازد بعدی گفتیم یه فلان سلش چیه سلش اسم واقعه یا اسم مفعول مثل زیدون از بود زیدون از بود یعنی چی یعنی زیدون الازی یز بود به جای اله فلان چی گذاشتیم الازی و به جای زارب گذاشتیم یه وقتی موصول ما شد الفلام و الفلام شبیه حرف بود این الفلام اسمها الان تو همین زیدون از بود. زیدون مبتدا کی خبرشه ما میگیم خبر از زارب ولی از زارب خبر نیست کی خبره الفلام خبرشه جایست دیگه ولی چون شبیه به حرفه شبیه به حرف تعریف اعرابش رو داده به کی به مابعد والله زارب نباید که اعراب داشته باشه سلیم موضوع که محل اعراب نداره اون ضارب که شما اون باره می‌بینید ذمه داره و رفعه اون علامت مالی کیه مال الف که داده به چون الفلام. باز این یک گرفت هست در جای ششمن مثل اگه بگم هندون از زاره و تو اینجا هلفلام چیه؟ به معنای است بعدی عیوست عیوی محصوله یادتون از نیست که گفتیم عیو چند حالت داره؟ چهار حالت در یک حالت که کدوم حالته؟ اضافه بشود و صدسدش محزوف باشد مثل لننزه اندم این کلشیت ایه هم اشد تو علال رحمانه اتیه همین آیه رو تویه کتاب ادایه در این صورت مبنیست اما در بقیه بر چیه؟ معربه. حالا چرا ایه های موصوله معرب شد؟ علتشو چی گفتیم؟ به دلیل اینکه این ایه دائمان اضافه است و اضافه معارضه میکنه با علت بنا اگه اینا رو یاد نگیرید به ذهن نصفاری و مطالبش رو اون چارچوب عدبی یاد در ذهن شما تحقب پیدا نمیکنه هی hey, به مرور یه چیزی میشنمید فرقش بود میشنمید فرقش باید بدنه و اسکلتی رو از ادبیات یاد شما در ذهن داشته باشید بعد بقیه اقوال رو بهمان شاخ و برگ بهش به لذا اگر یک مطلب رو که خوندید فراموش کردید در خودتون شک کنید دنبال حفظ کردنش برید و چند مرتبه دیگر بخونید تا اینکه حفظ کنید باید یک چارچوبی از ادبیات تو این سال اول تو ذهن شما ترسیم پیدا کنه تو همه زمین‌ها، که بعد این چارچوب رو انسان بتونه چه بکنه؟ هی شاخ و وگرنه اگر قرار باشه شما فراموش بکنید ایوه منصوله، ایوه استفاقیه، ایوه شرطیه مطالبی که داره این کار شما رو در آینده و امده شما رو تلف میکنه چیز زیادی ها نمیدید. من حکمت کار رو خدمتون عرض کرد ایوه و زو کفتیم این زو نزد قبیله ته. یادتون نیست؟ به معنای چیه؟ یک لفظ از به جای شیشتا معنی زو یه شعر مثال زدتون این الماء ما و عبی و جدی مثال ادایه سار و بیری زو هفرتو و زو توید به زو حفرتو زو خبرشه حفرتو بگیر فیل و فائز سره یه زو و زو تبایی تو آمد مقنی هم هست زو. در حالت رفتی نسبی جردی زو این با اون زویه به معنی سایب اشتبانشه اون موربه در حالت نسبیش میشه زا در حالت جردیش زی این نه مثلا میگم مررتو تو به زو خامن مررتو به زو خامن یعنی چی؟ یعنی مرد تو به لذی و به ریزو حفر تو حفر تو فیلو با آید سله مو آید که آید سله چی شده؟ هزم شده کتاب ادایی اینجا یه اشتباهی هم کرده بود اشتباهی کرده بود؟ زور رو انگام معنی کردن چی معنا کرده بود؟ اللذی معنا کرده بود تو این شهر که گفتیم بهر چیه؟ محننس زو هفتو به معنای علتی هفتو هست و زو طبعی هم همین همه این کرد کردیم و یکی هم زا دیگه از اسماع موصول مشترک زای گفتیم زا موصول مشترک است به شرط که بعد از من استفهامیه یا ما استفهامیه بیایم من استفهامیه یا یعنی بشه مازا یا بشه بگیر منظر. شد ما استفهامیه زا زاش به معنی چیه الضی پس مازا و مقابلش معنی است؟ مل لذی ما الضی ز موصول است بعد ما و من الاستفهامیتین بعد از ما یا منی که برای استفهام باشن ال استفهامیه ما و من استفهام ببینید نگاه کنید و من و ما و عل و ایو و زو و و مطلقا این الفاظ برای محنس هستن و مذکر هستن بگید مطلقا مطلقا یعنی چی؟ یعنی چی مفرد چه؟, چه؟ جمع یک لفظم به جای ششم. شد؟ درسته؟ حالا یک مبحثی رو ما در رابطه با مازا بهش اشاره میکنیم که مازا که در قرآن و احادیث رسیده و در کلمات عرب چجوری ترکیب کنیم؟ مازا یه از علونه که مازا یونفه بود. و انواعی مثل این چه جوری میگه اذا قلت مسئله تو اذا قلت مازا صنعته این جمله رو بنویسید که ترکیبات مختلف رو داشته باشیم و من ذا رئیت مازا صنعت من بگی. بگید چون؟ اولا توی این دوتا مثال صنعت و رعیت فعل چی هستن؟ فعل متعدی. صنعت و رعیتا فعل چی هستن؟ فعل متعدی. تو زن داشته باشی. اگر این مطلب رو در ذهن گرفتید مازا صنعت و منظر رعیت سه ترکیب داره یعنی امثال این هم سه داره مثلا این آیه مازا همین همی ست داره چون یونفقون مثل همی سنده رعیتت متعددیس ترکیب اول ترکیب اول ما استفهامیه ما ما یه چی؟ استفاق همینطور من ها ما و من استفاق مبتدا از نظر سیببه مبتدا از نظر سیببه و خبر مقدم از نظر جمهور نهاد خبر مقدم از نظر جمهور زا به معنای علزی به معنای علزی. خبر نزد سیباوی خبر نزد سیباوی مبتده معخر نزد جمع. چون میگه اگه نکرو معرفه یه جا جمع شد مثل اینجا که ما من نکره هم دیگه زا هم که موصول است و معرفه یه جا جمع شد و نکره مقدم بود همون نکره میشه مقتدار جمهور میگن نه نکره مقتدار نمیشه تا موقع که معرفه است رأیتا یا سنعت فعل و فائد و مفعول که آئد سله بوده هست مفعول که سله بوده است جایزاً حضب شده جایزاً چی شده؟ حضب شده جمعود رعی تهو سنه تهو جمعه رعی تهو تهو هم سنه موسم پس الان جمله ما جمله اسمیه است یا فعلیه؟ جمله اسمیه چون ما مبتدا یا خبر زامند ما زامن. رایده و سناده است این ترکیبه بگید اول لزو تو کتاب نگاه کنید و ما موصوله فزا موصوله دیدید یا نه فزا موصول و من و ما آن من و ما دو تا مبتدا هستند درستو وضعا چی بوده؟ خبرشون بود. این بنامه ترکیب کی گفته من و ما مبتده سی ببید ترکیب جمهوری حالا اگر یکی بخواد خود این هنها عبارت چیه؟ مازا سنعته یعنی چی مازا سنعته؟ یعنی ایوشه این الازی سنعته بود ما رو گذاشتیم ایوشه یعنی چه چیست زهارو گذاشتیم علزی ایوشین علزی سنعتا بود اون یکی میشه من علزی رعی تا بود براد شو سؤال کرده دیگه چه ساختی؟ چه چیزی رو ساختی؟ و چه کسی رو دیدی؟ سؤال جمله چی بود؟ بگید اسمی یه. جوابی هم که میاد خب جواب باید اگر اون اسمیه سوال کرده شما هم اسمیه جواب بدید جواب میگه باید مرفوع باشه ول جواب و رفعون و جوابش میشه مرفوع آه؟ یعنی در سوال اول باید بگید مثلا کرسیون کرسیون یعنی چی؟ یعنی صندلی ساختم در مثال دوم بگی زیدون حالا اگر یک موقع در جواب این سوال گفت کرسیگون یا گفت زیدون اون کرسیگون و زیدون رو چجور ترکیف میکنی؟ مثلا یکی به شما گفت مازا رعیت شما گفتید زیدون این زیدون بگید چه محلی داره؟ بگید خبر است برای محتدای محضور یعنی اللذی رعیتوهو بگید زیدون اللذی رعی توهو بگید زیدون خب اگه اللذی رعی زیدون باشه اللذی بچه مفتده زیدون خبه این جمله چنان جمله ایه؟ اسمیه اسمیه در مقابل اسم این ترکیب هفته و جوابش رو هم ترکیب دوبه بگید زا زائده است در دو جمله زا زائده است در جمعه. دو جمله و مفید تاکید زا زائده و مفیده, زا زا مفیده بگی تاکید و ما و من ما و من اسم استفهام هستند و مفعول و محلن منصوب برای فعل بعد از خودشون برای فعل بعد از خودشون و اگه مقدم شدن برای چی مقدم شدن به خاطر اینکه دارای صدارت هم مفعول چرا مقدم شده چرا صدارت داره پس ترکیب که بکنیم بگیم ما محلن منصوب مفعول صنعت زا زائد صنعت فعل و وقت جمله ما چه نوع جمله‌ایه بگی اسمیه یا فعلیه ها فعلیه است دیگه مفعول است یه فعل و فاعل جمله فعلیه است درستو حالا دیگاه کنیم القا اوها الغا یعنی اینکه که رو از خاصیت بندازیم زایده کنی و جایز است برای تو که القا کنی یعنی زا رو اونه بگید زا نیست فهوم مفعولانه پس اون موقع هما یعنی من هما میشن چی؟ مفعول بره بعد از خودشون این هم ترکیب دوفم زیرش خد ترکیب سوم ترکیب سوم میگیم من و ما بازا مرکب شدن یعنی درسته که من یک کلمه بوده ما هم یک کلمه جدا ولی الان این دوتا با هم چی شدن؟ ترکیب شدن مثل من که یک کلمه ساخته میشه اینا دوتا چیه؟ با هم ترکیب شدن یک کلمه شدن مازا یک کلمه است یه اسم استفهامه منزا هم بگید یه اسم استفهامه با هم مرکب شدن و محلن مازا و منزا منصوبن و مفعول فعل بعد از خودشون فقط فرقش با ترکیب دوبون چی شد؟ که اونجا ما مفعول صنعته بود اینجا چی مفعول صنعته است؟ مازار زا هم بشه زا بشه. باز هم جمله جمله چیه؟ فرمیه است و ترکیبوها میخوره به زا و مرکب کنیم زا رو مأه و ما با من و ما خب میشه چی اون بوقع مرکب بشن؟ میشه به معنا ایش ای این ایش ای این یعنی چه چیزی؟ مال ما یا ایوه شخصه میشه چی؟ مال من منزا خب فلکلو فلکل یعنی چی؟ یعنی منزا و مازا ما و من به اضافه زا کلش و حالا که الفلام نمیگه که فلکلو مفعول همهش رو هم دیگه میشه چی؟ مفعول مفعوله کی؟ فعله؟ حالا جمله ما جمله فعلیه شد او شخصی که میخواد جواب بده اونم باید به وسیله چی جواب بده؟ جمله فعلیه لذا میگه ول جواب و علت تقدیره جواب بنابراین دوتا ترکیب دوم و ثبوم منصوب و نسب و جواب منصوب است یعنی اگر از کسی پرسیدیم منظار ایتر گفت زیدن منصوب جواب داد ما میفهمیم که اون چجوری ترکیب کرده جمله ما رو؟ جمعه فعیلیه ترکیب کرده با ترکیب دو بزه. حالا اگه زیدن گفت منصوب گفت تقدیر عبارت اون چیه؟ اون زیدنی که اون منصوب میگه مفهول فعله محضوبه بوده رعی تو زیدن رعی چی شده؟ حضور زیدن جواب داده و تا اینجا تا سر این تا سر اینجا فعلی بود که چی بود متعدی بود مثل رعیتب و سنده. اما اگر فعل ما لازم بود میگه فرقی نمی کنید فعل شما اگر لازم باشه همین تراکیب کنش هست دیگاه علیه نه و مازا عرزه چه چیزی آرز شد ظاهر شد پدید آمد مازا عرزه فعل لازم و منزا قامه چه کسی است؟ الان هر سه ترکیب رو میتونید تو اینجا بیادید بگید ما مبتدا حالا یک شما ترکیب مازا عرزه رو ترکیب میکنه. ما مبتدا بنابرای قول سی خبر. بی قبل قول جمه زا موضوع خبر یا جمله درود شو جمله اسمیه عرزه فعل زمیر فایلش فا سلام سله چی بوده همون زمیر داخل عرزه یعنی جمله اسمیت جوابش میشه چی مازا عرزه چه چیزی آرز شد آه؟ چی ظاهر شد چه اتفاقی افتاد جواب اگر بده جوابش میشه مرفو چون جمله اسمی حالا اگر مازا رو دقت کنید مازا رو روی هم یا جدا از هم یعنی زار و زایده بگیریم یا زار رو مرکب کنیم اگر ما ترکیب دوم و سوم رو بیاریم دیگه نمیتونیم بگیم مازا مفعول عرزه است چرا بگیم؟ بگیم که عرزه فعل لازمه باید بگیم مازا یا مایه به تنهایی ترکیب دوم و سبب. مبتدا ارزه‌ چیه؟ خبرشه. باز جمله میشه جمله بگیر بگید. اسمیه. باز میشه جمله جمله ای اسمیه دیگه نمیشه مفعول برا فعل برطرف. مبتدا قرار بدیم و ما بعدشو خبرش. ارزه یا قامه بشه؟ خبرشه. پس در هر سه ترکیب مازا ارزه و منزا قامه میشه چی چی بگید؟ اسمیه. ها؟ میشه جمله جمله اسمیه جواب الا انال جوابه رفت اون مطلقه. جواب در این صورت مرفوع است بگی مطلقا یعنی بنابر هر سه ترکی. چرا؟ چون برابر هر سه جمله ما جمله اسمیه خواهد بود جواب مثلا منزا قامه میشه زیدون یعنی چی؟ یعنی زیدون قامه یعنی زیدان قامه میشه مقتدا زی که خبرش بوده چی شده؟ مرد شده حال در هر سه صورت چیه؟ بگیریم جمله ما جمله اسمی است و جوابمون هم مرفوع وصل بالله خوب اینها رو بخونید ها. نیازشون داریم شدید